زنم رفته. میدونم چرا. میدونم از دستگی. رفتار من مقتدرش کرده. سکنات من پرش داده. ولی نمیذارم سیاهی امشب سفیدی ها لانه مقتدر کنه. جنسمون جوره در و تخته جوره کی عزیزتر از خوهر کی باینصافتر با از رفیق پس جنسمون جوره تلت از تای قلبش بگه بله میره خونه بدری حلفت از تای قلبش بگه بله میره خونه کریم بستان تای قلبت آبجی علفت بله تای قلبت آبجی تلعت بله مبارک است این شب به طالت این شب این پر پرست شم و چرا وقت این شب و بادا مبارک بادا این شب مبارک بادا باده بله من از خریش هایی نه قبرون قبرون شکل کنم اما اسوری بود میخواستی مردم رو شاهد کنیم اونجوری؟ بابا جان کنه دخترم خواستگار اومده خواستگارم کجا اومده؟ که سیگار سی من چی حترم ها همین ها شفتر همین Oh, okay. You're gonna get me, you're gonna get me. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. آارز نیومده اینجا چش بمونمخوانده داشت؟ باجب شیرواانی در مورد شیروا چی؟ من چقوط رو شود کردم تااش حالال که بری سراخ داران بنزین هیچی نگو سست. هیچی؟ خوب میشه چون آدم هاستم برای تو مهم نیست من باید برم توش پوله میشینی اینجا پیگیرش میشی تا بگرمش پیرون هر نیم ساعتم به من زنی میزنی به خانه بادشم خبر بده خوبی آبجی بگید آراز اومده اونجا نه همینجوری پرسیدم نه تو حجرش نبود گفتم شاید اومده نمیگم همینجوری پرسیدم خیلی خوب من میام اونجا میخوام داریو ببینم درداشت بیقبری یه دو ساعتی میشه درداشت آن پس پس روی من باز میکنم درداشت داریم من باز میکنم سلام هم تو کنم افتاده تو هایی تتون میشونم aja sooje on sa on ja see, see. همال آوردنش بیرون بیروش آقا بلیم گذر به مغزه نشده زبون عقلش کار میکنه اگه تو اون مطفاق داشته بودی بلیم نه عقلش کار میکرد نه زبونش. خواستم شما رو تو درسه نه انداخته باشم منم نیست تو درده هستم زم بچه شم بله صاحب کارشم خونم از هیچ چیزی دریغی نیست اصلا نگران نوشید خرج بیمارستان که فرق خواه خرج خورتونم روی چشم به خیرم که گذاشته هر مشکلی هم پیش امرد هر احتیاجی داشتید این سرکارگرش هست نه فقط امروز تا روزی که شوهرت خوب بشه برگرد سرکار حقوقش بیشتر میشه که کمتر نمیشه Ma pole ma minema سلام سلام خونه آبژی خانومی؟ بله خوبی؟ آراز نایمده اونجا نه نایمده اینجا محتب جون میشه امشب خونه آبژی خانوم بمونی اگه یه موقع آراز سرکلش پیدا شد و رو زنگ بزنین چیزی شده؟ نه چیزی نشده یه ای چی که حرفا میشد پسخار خاصگاری چی؟ آه یا حنیف یعنی یادت نبود حنیف میدونه امشب خونه بادن منتظرشن آره الو خلی قط کن چونم خالا داشت مرد احسابی مگه امشب تو خواستگارید نیست چرا هست بچه ری یک کلمه به من نمیگی چی باییم شما فرموده بوده اینجا باشیدم نشستم در خونه کنگ بستم از آرازم خبری نیست به پربارو زیر دوش شلوار تو تنت کن دست خوهر تو بگیر باشو بیا خونه پدر زنم هم اینجا چی میشه پس؟ اونجا چی؟ میگم خواستگاریته میکوی که وزنم جای خودم بعد میام؟ نمیخوام که اعلام روزنامه کنم الان نگران خودشم این پسر کجا پشده رفته خانده داشت انوزم نپرسم چی شده باشو باشو بیا هنیف جان که امشب شب مراده شب خاستگریفه زود بیا جزه که اومده توی پیسن این موقع شم کلوتو دردار بد میم کلوتو دردار آراز تو جا چکار میخوری این موقع شم گوشتو من یه دل دارم چند تو دل بر آب جیاتفه که چشت شالنه محتاب و حنیف و آرازم باقی دلبرام ابت من یه حنیف میگم شما چند تا بشنوید محتاب گفت شما گفتید کی بهتر از برادر خونده چابوش تو خدا سرشایده خونده ناخونده نداره خود خود برادره حنیف از اون برادره که میشه باش حبس عبد کشید چرا آقای مشرفی؟ چون پاکه تو چش زلزدن بلد نیست نامردی بلد نیست تو نامردی خنگه ولی تو مردی هنیشتره چاوش یه دختر گرفته از شما مثل گل حالا میخواد یه دختر دیگه بگیره از شما مثل برگ گل واسه داداشش مثل داداش حنیفش. حنیف پاشو گذاشت تو خونه پدری من برکت خونه چوبله شد با خدا بیا تو تا افتاد بهش انگار گمشده سالهاش رو پیدا کرده باشه روش من نمیگم به غلامی قبولش کنید میگم به مردی قبولش کنید هنیف سخاوت داره من قد سخاوتش پول نداره من سخاوت کمه بای پول دارم به رسم هدیه به رسم رسوم یه واید دیویس مهتی دارم تو دربند که اصلا هواچ مریض و شفا نیده اونه پشت قباله دختر خانم شما که خوهرزن من و مونس زرم شما هر احترامی به من دارید از من کم کنید به برادرم هنیف اضافه کنید ببخشید بریم اونجا بسلام آراز نزو بده تو این رو زنی دادم داره میاد در خود چی شده؟ ورود غیر مجاز داشته. ورود غیر مجاز چرا هر روز میاد اینجا کارو هر روزشه؟ این موقع شب اجازه ورود نداشته. حالا وارد شده. از آسفالت اینجا که کم نشده. برو آقا. آقا برو عقب چه برادرمه؟ ایشون کلانتری. شما زنگ زدی ممور خواهش میکنم به آقا آقا دستاتو بشش ببینم این چه خراب شده ای که چفتو بس ندارو گفتش. گفت داشتش شیکونداشون. واسه کلانتری. آقا کلانتری جای خلافکاره. این ورودم خلافه. خیلی خوب يلا ساکون. منم بودم. منم تالکش بودم. منم ترکش بودم نبودم بودم یا نبودم بوده آقا بوده آقا نبوده آقا داره میگه بوده دیگه مکه من اول ندیدم پس بیکم ترکش بوده بفرمام نمی کردم یه روزی به خاطر کریم بوستان پشت کنی به من لباس کهانه تن بابامون کردی تشنا و گشنه بلش کردی اون دونو کریم بوستان کیه خان داشت <تصفح> کریم بوستان کیه کریم بوستان از بابامون بگو و هیچ پدر یا به خاطر پسرش مجازات نمی کنن آیا تشنه لباس پاره خوابه مزیونه نبروته مخصوصا خوابای تو که به قرص و دوغ و دور زدم با ماشین من بنده ولی امشب تو ماشین خوابم نفت چون من نبودم چون دوغش کم بوده چون خودم برای دوغ درست میکنم نبودم چون پوشت کردی به من رفتی بیخبرم گذاشتی رفتی تو دستخط بابا اونو پاره کردی تو از بابا چی یادته چند سالت بود وقتی مورد دست خطش که یادمه همون که تیکه تیکهش کردی نمیدونی آلاست نمیدونی نمی‌دونی بعد بابامون کریم بستان چند بره زده بود رو نمیدونم نمی‌دونم آقا من هیچ نمیدونم تو که میدونی بگو من چیزایی که بهت می‌گفتم و تو حجور گفتم تو تو باشه فقط دست خده بابامون آتیش داری همین دیگه به من نگو تو یا امرلای زربرق تا اینجا بزرگت نکردم که به من بگی تو تو چه ته؟ که خدا غلط شده؟ من امروز هزار تو گرفتاری داشتم از سر خواستگاری یه غنیف اومدن بهت همه یه شهر رو پید کشتم نه که به من بگی تو دارم گزارشتون رو میویسم چه تونه؟ ما رو باز چی آوردید اینجا؟ نشوندید رو زمین دستمند دارید, دستمند دارید که چی؟ دستمند واسه این رو اسفال گاز داده؟ تو ملک مردم گازیده بی اجازه خوب کاری کرده یا اون اونجا داره گاز میده تو ملک مردم ملک مردم مال مردم مردم مال مردم مهم نیست ول کنار از بیا پایین میرزا غلط من نشو اگه کلیم بوستانو دور نزده بودم که الان جفتمون نومخور پسرش بودیم بابامون انقدر برامون گذاشته بود که نومخور کسی نشیم بابامون هیچی برامون نذاشته بود جزی اسم و آبروت و میدون و پول کریم وستان که امانت بود دستش ضرر داده بود سر چی؟ سر اینکه که رفت و پول گذاشت و کاری که تخصصش نبود سیمان اون سالا هرکی می رفت و کار سیمان یا میشهش تو طلا لاغ خاک بابا اون نشست فخاک و خاک گذر داد. همش چشو باخت. دش قبل مرگش اون صون کورم. بس می بوستان بوسستان که طلبش صاف کنه؟ بعدم بر روش کارگرش. کارگر کریم بوستان شید. من تو این خانواده بزرگ نشده چطور ما تا حالا از این چیزا نشنیدیم شنیدی؟ تو دادگاه همه زبون خویله شنیدی همه زبون ستار شما گفتی ادعاست آب عاطفه گفت ادعاست چون بابا حرف کارو خونه نمی آورد بابا حال این حرفا بود خب دوستن و زنش بفهمه چی داره چی نداره عین نبوستان بعد شما چند سال دود که این چیزا رو بهت گفت نگفت خودم فهمیدم بابمون ازش خاک بردم میشد چون زمین خورده بود فقط یه اسم ازش مونده بودم. بله خیر پای چرا دروغ به بابامون میبندی؟ رو خاک نشسته بود خونش رو میفروخت؟ خونه خونه ای که بعد مرگش بعد سر گرفتن بچه هاش سبت و کرده بود خلاه این با سبت سنیش فر از من خوشش نمی왔. دستو گرد گردش تو اجره. ولی من باید جارو می زدم. من باید میوارو بار می زدم. من باید طاجی می چرردم. باغمو نگاه می کرد ولی هیچچی نمی گفت. از مادرم سوال کردم. گفت بابات میخواد تو مرد بار بیای. ها آقامون میخواست من مرد بار بیام ولی کریم بوستا میخواست منو خوار کنه حالا چرا هیچ وقت نفر چرا بالمو میگرف نباش میکردم حس و تو نگاش میدیدم حس میکرد آره من سفر شما ها شدم که تو الان حجره به باشه موتور فرام ملیونی زیر پاعت میپرسی دی میپرسی دی میخوام زیر پاعت باشه یا نه الان میپرسم میخوای باشه یا نه من همه چیم پر حجره آپارتمان ها خونه هم. همه چی همش از اون سدونگ حجره یه که قرار بوده بابامون بس میکنه این بوستون کنه میاد همه رو میدم سگ خور تو چی؟ تو هم میدی بره؟ همه چی تو میدی؟ خونت حجت ماشینت تا کمور لبازت خونه ای که آماده از تو با لیلا بری تو زندگی کنی موتورت So let's see the pots for sure you are now changed hem şöyle bir şilûğı be var umut fırsat nası azatun teşekkür kurun. Konubadı mahsubkunum koca men koca. Hame çide gozaştı vasat dumadışun beşam bo büyükum beşinam paşam. Anlaşıldı hiç. Kodokunli ovatın hay muhabbetı daşdı olsun. Na. Liyaka خانده دا داشت بیده دا داشت تو چارت هم بیمام زمان بیلیاغتی بیمام زمان حرف و سخن تمومه نبینم ات فقط خانده داشت خانده داشت عنیف اما نگام خون خانده داشت عنیف اما نگام خون خانده داشت Tegelikult تو راهه نه بسرسه تو راهه جیبم باشه بسرسه میشم که یکی عین تو بشم مگه چه من الله و عالم. خدا دانت اگه خدا دانت بنده خدا چرا داره تو اومد نوش میکنه. میکنم چاوش ام. یکی عین تو شدن کاری داره صبح تا حالا که این چک تو جیبمه حالم یه جوریه که شدن عین تو کارشناس بفرس هر چی خساراتم بود تقویم بزن بعدا چکتو پر کن دقیق و برمی چاوش کشتتت به خاک نشستن کریم بوستان کشتتم مالکه بخواهدش گفتن نبینمت بزن به چاک اگه میخواستین نبینین که بانه همستودی ببینی حالم خوبه یه نه بعد بری خب بگو اصلا بیارو سرم آبار شخانه باش نامردم اگه حرف بزنم سر بلند بکنم نبینی منو منی میشه شما میدونه بدون شما سر چی؟ سر آتیس دادنه انبار شیروانی غلط کردم سر دفعه سی ست دفعه خوبه من نمیزنم رو چیک سفیده میزنم چیزی بنویسه. نمیسه چاقوت رو شوت کردم یه که بری گالام برداریم آتیش بندازی تو انبار مردم آم هرد من چک سفید امزاز آره منو اینجوری شناختی چه میخوایی نذاری رو چکم چیزی بلویسن بیا بیا رو چکم چیزی ننوشت اومد رو خودم نوشت. اینجوری پامی من گند زنم به خودم واسه خاطر پول من این که داشم داشمی نفهمیدی نمیفهمی نمیفهمی نمیفهمی که میری آکش میزنی به مال مردم آرز واسه چی تو کنند داری بود صبح تالا چشه چش بود بگو بگو گفتیم نپرس در حالا بپرس چرا از خاطر اینکه که یه دست خط از آقمون پیدا کرده که روش نویست کنی مستان راست میگه آره مستان راست میگه شیربانی راست میگه خواهی که آراز میبینه راست میگه تو در کردم ما هممالش بالا کیدم تا توار از نکنید خودمشاگردیش رو نکنم معدا او میخواستم با محدوبون بالا بالا بود من پایین پایین اون و دو در تو منم بالا بالا ها. مرفم اون بالا بالا هامل تکخورری کردم. خواستم خودم سری تو سررا داشته باشم. معگه. خواستم داشتم سری تو سرو داشته باشم. داشتازم سری تو سررا داشته باشه. داشت هم سری تو سررا داشته باشه. من تو سر داری؟ آراز سر داره که تو دو ماده خونهات مهد آفچی شوهر نرگست آراز بخ و رابه چرخ و دنیا به هیچ چیش نماشه که آفچی به دارشتش نگاه کنه بگه بخ بخ به اشتاب بانکیش نگاه کنه بگه بخ بخ تو خود پرسیدی؟ آتفه چرا همون شیر میخورده یه رسول مونده؟ بس خاطر تو؟ بس خاطر آراز؟ میگه بذار یتیمای با مومانم رو زم بدم بعد خودم به هم خونه شوهر آتفه اینجوری پایی داشت فرستاده منم با دور زدن رو کریم گوشتم هر کسی هر جوری بره دیگه یه جا به بد فقط شدید شماها نمی فهمی دیگه نمیفهمی. من خودم آلوده کردم که مردم بگن عجب داداشی هم عجب داداشایی دارم درگی جوره هرکس رو ناکسته دیگه این آستینت مینفت بالا گم دشتر می مرد مینفتی گوش زندون من آدم لقط نمیخوام درورم آدم بیاورو هم نمیخوام آدم آلوده هم نمیخوام تنها آلوده این خاندام باید من باشم و تمام واسه خودم کریم دوستانو دور سدم واسه خونواده من من چی بستم واسه این خونواده آلوده این دیگه نمیخوام تقدر آراش خوابا خوب ندیده من ندیدم ورد زبونمه به خود را که گناش بایه منه بی خیال آقام شو بی خیال آقام شو صده من قیمت دادم بابت اعضا به بابام که تو بری آتیش ببا کنی که من برم گردن کچ کنم بگم بگذرید شوها خوبه کشی واسه کریم بستان که من برم پیش ست طور گردن کچ کنم که بگذرید اگه میخوایی باز دوباره چشم بهت باشه باید گول بذاری وسط گولی وسط نیست شما تشخیص دید کریم بوستان دو درشه بس باس میشد این چی میگم نگی نمک نشستم وقتی حاجی بود من یه تیم بودم شما یادت ستار تو چشم میگاه میکنم میگو اوی دفتر ازام کتاب ورده بیا پده باجی. شما یادش دادی اسمم حنیفه سر خاکی با حاجی یاده گف خوی سینه خورمان ورد بیان خفتش کردی یکش کردی خاکش کردی گفتی اسم اینو حنیفه خوی نیست از اون روز به بعد دیگه یتیم نبودم خدا گفتی با خود حساب کتاب کنه پس باس بکنه منو شما خونددش میرم چشم ولی قولی بزن نمیزارم میرم ولی نستن این که میگی برو نبیتونم قولی بهت بد بدم که زیرش بزرم پردم کنی شوتم کنی سوتم کنی هرچام جو. کسی جایی تو بهش گوم بگیره آرس مجرب بالا گرفت. تیک که قرون دور زندگی اونا نداری. نداریم صد تا. با تخم و چاوشه. ولی تو آرس جدا از این حق حقونا هم بودی. اربا که به در مادر مون قسم یک قربا پدر مادر اونان و قسم نخور. از زبون من قول بدین جایی به زندگی لئرا نمی رسن. رقم سر سرشون. تو دعوات با کریم بوستان خاله رو گذاشتم تهران. چند روزی که بفرما پشت ما بودم بود. ببینید میشه. تنہا می مونم میدونم میای با Kõik! azfaroda ida